السلام <تصفيق> عليكم جميعا ورحمة الله أسعد الله أيامكم تقبل آمالكم إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ للخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المدات المهديين لسيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وجعلنا وإياكم من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه آمين يا رب العالمين جهة الشعجية أرواح الشهداء وإمام الشهداء كليه عزیزانی که در مسیر این انقلاب پشتبنده و تکاملی و زمین ساز قیام حضرت رقیه الله جان برکف در طبق اخلاص این مسیر جهادی را در المعمل تهی کردن اجماعا سلامت الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا آیه کجا؟ سوره چند؟ آیه چند؟ بله؟ سوره نور آیه چند؟ خب سالیک نکوس از بغادش پیل است یه سلوات دیگه خدا بله آمد سلالا محمد بله آمد بهت بنا نیست من سخرانی کنم اینجای کارگاهه اگر قبول کنی. در خلاصه منتظر سوال های دیگر هم باشید خب من قبل از ورود به بحثی که عنوانش را گفتن به شما میدونیم؟ عنوانش نیه؟ بسیار من چند تا نکته مقدماتی دارم بدون توضیح فقط سریع میگم بعد فهرست بحثم را میگم و قبل از فهرست بحث رسالتم را در این بحث براتون تنبید بعد فهرست بحث بعد اگر وقتمون تو این جلسه میگیم اگر وقت نمون دیگه طلبتون شما ما مؤسسه خب یک تذکر اولا این حرکت ابتکاری و بسیار مطلوبی که مؤسسه منرجو انجام داده و برکات و ثناونی خواهد داشت واقعا جای تقدیر و تشکر. حالا این خیلی میشه در حرف زدم الان زود من حرف بزنم. این حرکت پیشروانده و فقیه پرور ان شاء الله لوازمی داره و نیاز به یک برنامه جامع داره. مهمترین چیزی که در این برنامه جامع چه برای برگزار کنندگان و چه برای عزیزانی که میخواند از این برنامه استفاده کنند؟ دو تا شاکلید مهم را باید نسبل این خودشون قرار بدن. شاکلید اول روش شناسی و روش مندیه توی این کار. روزه که بحثی که خواهیم داشت روش دستیابی به نقش سیره و تاریخ. که این مهمتر از خود بحثه. چون شما را راه میدازه. بنا شد ما به شما ماهی یاد بدیم نمیخوایم به شما ماهی بدیم قبول اگر تأیید میکنیم یه صلابات شال شاب کرید دوم ضرورت داشتن نگاه جامع و منظوم این خصوصا مؤسس ای که میخواد مدعی نظامسازی و فقه ساز باشه نگاه جامع و منظومه ای و پرهیز از هر گونه جز نگری و پراکنده کاری حتی تو همین کار الان یکی از نمیگم نقد ولی چون کار ابتدایی و مقدماتیه قابل قبوله که جنگ به تعبیر خودم یک مشت نمونه خروار توی این بحث مکتب شناسی فقی عرضه شد و میشه توی این دوره ولی من ترجیح میدونده ترجیح میدم حسب تجربه و آنچه که از خرمن بزرگانی چون امام شهید صدر و بقیه بزرگان داریم تأکید میدم که اول نقشه راه برای این کار تعیین بشه و بر اساس اون نقشه راه این حرکت تداوم پیدا کنه ان خب نقشه راه را الان اشاره می‌کنم بعد وارد میشم چون مهمه. نقشه راه دوستان دوستان برنامه ریز و دوستانی که بهره مند می‌خوام بشن از شهید صدر آیت الله روز محمد محمد باقرسد استاد بزرگوارمون یه ای داره که این به فارسی هم ترجمه شده عربیش اینه الاتجاهات المستقبلی لحرکت الاجتهاد فارسی هم ترجمه شده آینده اشتحاد یا آینده روند اشتحاد دو سه ترجمه شده گوگل بزنید در میاد این عصای دست شما خواهد بود در کل این مسیری که میخواهید تا آخر انشالله بهش برسید چون گذشته و آینده و وضع فعلی اجتهاد را برای شما خوب ترسیم میکنه و نقشه راه به شما میده خب دو کلمه تلائی من دارم یکی از آیتولا از ما استاد وزار بارون وحید خراسانی امام این کلمه کلمه دهه 50 50, 50 این کلمه فرمودن وقتی میگیم امام زمان یعنی چی امام زمان میفرمایند امام زمان امام الزمان امام زمان کسی که در پیشا پیش زمان حرکت میکنه و زمان را امامت میکنه مدیریت میکنه زمان در اختیار روز پس کسی که میخواد مدعی پیرووی از امام زمان باشه چه باید بکنه باید مثل خود امام زمان در امامت زمان نقش داشته باشه خب این را امام خمینی قدس الله سره چگونه فرمودن یک کلمه ترایی دو بود فرمودن های علمیه باید پیش پیش زمان حرکت کنند ما امروز یک خبری الان در تلویزیون به شما همین این لحظه این خبر یعنی زنده یه خبری که شما در یک کانالی لایو شما همین لحظه میشنوید شما فکر میکنید الان معاصرید در حالی که شما که الان این خبر رو شنیدید شما عقلید چون بعد از حادثه شما این خبر را شنیدید یعنی حادثه اتفاق افتاد الان خبر دادن بس شما همیشه بعد از زمانید خب امامی که میفرماید پیشا پیش زمان حرکت کنید یعنی قبل از وقوع حادثه شما باید حادثه را پیش بینید کنید. روشنه؟ خب این پیامش چیه؟ این کلمه حوزه های علمی پیش و پیش زمان حرکت کنند تا بتونن زمان را امامت کنند. برای بر باشن. قبل از این که آی به خاطر نقشی را اجرا کنه شما باید تو اون رفته باشید. طرز فکر اون دیده باشی و بتونی پیشبینی کنی او چه تصمیم میخواد بگیره اینکه چرا امام همیشه نقشه های اونها رو برهم میزند بر, هم میزد بر به یک اصلی که حالا در مقاله شهید سردونه میبینی اینجا خلاصه شد میگم کسی کسی میتونه آینده را پیشبینی کنه که تاریخ شناس باشه این مدخل ما برای بحثمون کسی که تاریخ شناس شد آینده شناس میشه یکی از علل مهم موفقیت امام در مدیریت حوادث پیش بینی نشده برای خیلی ها این که امام مسلط بر تاریخ جهان انبیا امامان فقه حوزه‌های علمیه مراجع تقلید مشروطه تا حال حاضر که امام مواصل بود حرکت ها را دیده بود آسیب ها را هم دیده بود و امامت و مدیریت میکرد خب این نکات هم بود نکات اصلیه حالا میرم بر هم میگردم به فهرست وحسان در دقیقه شونی. یه سلاماتی خواهد. اللهم سوال داره؟ این تذکر <تص> همش نه. پنش تا خب. هایی کسی سوال داره نقد بگید من تا بعد خیلی که نمیشه تهدیگ مونده خورده نمیشه. خب. حالای تاریخ از کجا بفرمیدیم؟ خیلی خوب حالا برود نکردیم ما. شما پیشا پیش بس داری حرکت میکنیم <تصفيق> خب <تصفيق> <تصفيق> رسالت بنده در این جلسه ارز کردم آموزش ماهی خوردن نیست آموزش ماهی گرفتن پس از ما الان انتظار نداریم که زود بریم شیرجه بزنیم تو امیق از آیه نفر شروع میکنیم اصول خوندید دیگه نه بحث خبر واحد کیا نخوندن حجیت خبر واحد و آیه نفر خب آیه نفر کی میخونه کی حفظه نه اصلا این مقبول نیست قبلش وسط هذه ايه الا احسن گاهی مجبورید آیات قبلش رو هم بخونید تا سیاق اون محیط به اون آیه را بفهمید که در دلالت اون آیه خیلی میتونه موثر باشه خب در این آیه نفر خب دیگه من نمیخوام بارده این بحث اتوری آفقی بشم یک بحث تفسیری مهمی هست که به درد کار ما میخونه و در اون مقاله شهید صدر او رو مفصل خواهید دید به این آیه یه بحث دعوت به تفقه در دین شده و برای این هدفی گذاشته شده درست؟ هدفی که اینجا گذاشته شده چیه در این آیه برای چی ما باید مشتهد بشیم و فقیه بشیم کی میتونید جواب بده طبق آیه لیوند قوم دو تا هدف دو تا هدف این دو تا هدف اگر بخوایم خلاصشون کنیم به زبون امروز این دو تا هدف میتونن این باشند چی بدن؟ انذار انذار چیه؟ بیم دادن، هشدار کردن، هوشیار نمودن. باید این فقه هایی که تفقه کردن و الان فقیه اسمشونه می‌ذاریم، باید اینا توانمند باشند در انظار قوم. قوم یعنی جامعه. قوم یعنی جامعه، نه انظار فردی. به وارد دیگر به جامعه سازی و مدیریت جامعه قرآن داره ما را متوجه میکنه در مدیریت جامعه باید راهبر جامعه یا فقیه که حالا بحثی داریم فرق فقیه با رهبر نرجه با رهبر بحث مهمی، الان واردش نمیشم چه فرقی هست؟ بگیم فقیه عالی قد یا بگیم مرجع عالی قد یا بگیم رهبر عالی قرار خیلی فرق هست بین اینا و به هم رفت دارن کسی که میخواد فقیهی که رهبر جامعه باشه باید قدرت انذار انذار این چی؟ یعنی پیش بینی حادثه یعنی توجه دادن به دیگر بصیرت دادن به قوم به جامعه قصیرت باید بده انتظار قصیرت دادن و اون جامعه در حال آماده باش و با انتظار باشه لعلهم هم یحضرون تا از ناکامی ها و ناخوشایند ها و, و و و چی باشن؟ برحضر باشن حشیار و بیدار حشیار و بیداری که دیده؟ یادتونی من دهه شست؟ نبودید ها؟ و بگید بزنم خب پس حشیاری و بیداری بیدار کردن خوشیار نمودن و آماده کرد، آماده بودن اون جامعه برای تحقق اون اهداف بزرگ دین که چیه اون هدف بسم الله الرحمن هم در سوره فتح آمده هم در سوره صف آمده هم در سوره توبه آمده یریدون ان یؤتی نور الله جاعفا وهب والله يتم یوره ولو كرهه الكافرون المشركون بيداء دیگر وایحب الله الا ان يتم نوره چوری میش یحب الله چون تو این جامعه فقیه جامعه شناس جامعه پرور مدیر خوب برای جامعه این چرا تی داره سوال، سوال کلیدی ها این حرفا چرافی به فقر داره؟ اصلا دیدید توی اصول این بحثا رو بیارن تو آیه و خبر اصلا کاری به اینا ندارن در حالی که این بحث به زنگاه و اساسی توی این فهم آیه و فهم این که چرا این تفقه جهاده تفقه جهاده چرا شون فرمود ما کانالیم اونوی انتروکافه همه به جهاد نرن به جهاد دیگر برن فلاولا نفره هم کلمه نفر اومد نفر عظیمته و جهاد این هم جهاد اونم اون جهاد فیزیکیه این جهاد علمیه در این جهاد علمی که فرمود مداد العلمان چی؟ او دارو. چون این چه ایسازه که امام جامعه ای که ما دیده بودیم یاش این جامعه این انقلاب میکنه بفهم انقلاب کنه جامعه وزارت خارجه میرفتیم پنج تا قانون نشسته بودن با یه جوان همه آراش کرده در یه وضع عجیب غریب اصلا همینا بعد جبر رفتن چکار کرد امام متحولشون کرد خب این ارتباط اینها با هم خیلی مهمه که حالا بعد بحث تاریخ و سیره چه نقشی در این فهم در فهم دین و در فهم احکام و در استنبانت میتونه به وجود بیاره که نگاه را وقتی نگاه متحول شد ابزار اون نگاه که اجتهاد و استنبانت هم هست اونم متحول میشه این هم شهیستد داری دقت اگر بکنید که هدف چگونه روی بخش فنی استنباط اثر داره ما الان توی اصول چه می خونیم قواعد استنباط در حالی که ما احتیاج به بعد از بیان اهداف استنباط نیاز به منابع استنباط داریم در مباحث حجت در اصول می خونیم نیاز به قبائد استنباط داریم که همین اصول لفظیه است و گاهی در اصول عقلیه هم میاد و چی میاد داریم منابع قبائد روش روش استنباط هم نیمه ناقص در مباحث آموخاص مطلق مقید تا عادل تراجیه اونجا مخونیم. ناقص خب ولی زا اصول که تمام کنید بخواد استنباط کنید بیانید هنوز نمیتونید گیرید نمیدونید چه کار روش استنباط روش استنباط را هم که یاد میگیرید بر اساس نوع مستنبطی که شما خواهید داشت مستنبت شما چیه؟ حکم فردی حکم اجتماعی مثلا یا نظریه اجتماعی یا نظام اجتماعی اینو متفاوتن؟ بر اساس نوع استنباط شما اون فن استنباض ابزار و فن استنباض متفاوت میشه حالا اینا برای شما شاید آن خیلی عجیب و غریبه دیگه این خودش یک دوره تخصصی میخواد که ما چگونه باید استنباط کنیم چه چیزی را از کجا چگونه چه استنباط کنیم چرا استنباط کنیم یعنی سوالات اصلی در نظام استنباط ایناست. استنباط یعنی چی؟ چرا؟ چگونه؟ ستا از همیشه سه سوال کلیدی ما داریم تو هر برزی. چیست؟ چرا؟ چگونه؟ اگر شما دنباره این سه سو سوال بگردید اون وقت شما برای قرآن صدها آیه برای استنباط پیدا میکنید. نه دو سه آیه. استنباد چیز؟ چرا چی کنیم؟ ابته در استنباد داریم و تفقه داریم اشتهاد نداریم در قرآن کلمه اشتهاد نداریم نه در قرآن نه در حدیث اینو از همین مستوردات چیزهایی که از بیگانگان مبارد کردیم و بعد باعث مشکلات مفهومی شد و این مشکلات مفهومی روی حرکت اجتهادی ما هم اثر منفی گذاشت که الان حوزه ما رنج میبره و شما هم از این رنج میبرید حالا ممکنه اون رنج رو احساس کنید ممکنه بعدها در سال دیگه احساس کنید این رنج رو خب یه حاشیه کوتاه رفتم که بدونید که رو بحث هدف اثر میداره رو فن با. و اونی که شما دنبالش میگردید باز اینجا یه حاشلیگه برم که ببینید خیلی از بحث دور نیستم ما وقتی میخوایم به و تاریخ نگاه کنیم دو جور نگاه هست یه نگاه جز نگرانه و موردی و مقطعی آقا تا الان فقاهای ما آیت الله ما برو جدی خصوصا که آقا در مکتب آیت الله در عقیق دارن حرکت میکنن در این بود که ما برای فهم روایت و برای ارزیابی سند روایت چقدر به تاریخ نیاز داریم در رجال و در سند شناسی و در فهم روایت در فهم دلالت روایت چقدر ما به تاریخ نیاز داریم یه سوال که ظاهر این عنوانی که ببنده دادن که من کار با اینه که من رسیدن به این جواب این سوال را فرع و یک سوال مهمتر می دونم و اون این که اصلا نقش سیر و تاریخ در استنباد در نظام استنبادیه ما نظامی داریم به نام نظام استنباد و ای داریم به نام نظریه استنباد در نظریه استنباد میگیم استنباد چیست و چرا همیشه به زحمه منده به خونی که بهش رسیدن درم میگم دیگه برای یک نظریه ما دو سوال را باید پاسخ بدیم چیست و چرا استنباد چیست و چرا استنبادی که حالا محل بخصمون اگر نه استنباد آب استنباد استخراج طلا استخراج نفت هر چیزی خاص خودشه دیگه استنباط دین یا استنباط احکام دین از منابع معین چیست و چرا فقد چیست و چرا تفقه چیست و چرا همه این تو این بحث نظریه است نظام استنباط زمان است که بگیم چگونه استنباط میکنیم یعنی از کجا حرکت کنیم تا به کجا برسیم در چند مرحله و در هر مرحله چه کار باید کنیم علم اصول اینجا جاش کجاست یه سوال تاریخ و سیره اینجا جاش کجاست دونجی حالا قرآن حدیث همه اینو هم کدوم اینجا سوال دربارش هست چه نقشی داره و چه جایگاهی داره پس فهم این که ما اگه بخوایم ما برسیم به این که نقش جایگاه سیره تاریخ در مکتب فقهی آیت الله العظما امام خامنه ای الله صلی و آله و, و, و این یعنی چه یعنی چه خود این وارت که اینجا ما برای ما برای شما چند تا کلمه واژه را باید معرفی کنیم تا این معنای این تیتر معلوم بشه این عنوان و چگونه می توانیم به این نقش و جایگاه برسیم این هم سوال بعدی چگونه می تونیم برسیم که اینجا این نقشه را من برای شما در نظر گرفتم البته من یک پنج مجموعه داده بودم که در اختیار عزیزان گذانن نمیدونم گذاشته شد یا نه خبته بودم قبل از جلسه به همه عزیزان داده بشه مطالعه کنم که با یک ذهنیت قبلی بیا دور جلسه بشه هیچ اتفاق نیفتاده خب حالا بعدا بهتون میگم یا دوباره به شما داده میشه که بدونید این بحثا که چرا من دارم از ریشه به اینکه کمی جمع عوض بشه کسی گفتش که لنند در, در داشت به بچهش گفته بود منو بر میشه اولین دکتر اون هم برش اولین دکتری که در مسیرشون بود به دکتر جراح بود. کارش جراحی بواسیر بود بدون اینکه که سوال کنه که کیه چیه اون دندونش درد میکنه اینم پسره گفته بود اولین دکتر اینه دکتر هم بخواب خوابی چک کرد برایش کرد گفت چی نداری گفت چی ندارم؟ گفت پدرم دردن میاره دندونم گفت خب دندونیست چرا اینجا اومدی؟ چرا خوابیدی چرا لخت شدی گفت فکر کردم ازلیشه می خواهی بکنیش خب یه سرم خب روز جمعه از دیگه بخندی ثواب گیرمون می میاد. خب چی میگفتم؟ گفتم دست ما منحره شدیم بیش درمانی ها خب ارز کردم اگر ما بخوایم بررسی کنیم نقش سیره و تاریخ رو در یک مکتب فقهی ما باید استنباط و اشتهاد و استراحی که خیلی میبین پسندیم فقاهت چیست چرا و چگونه حاصل میشه وقت در این منظومه فقاهت و نظام استنباط یا تفقق باید جایگاه سیره و تاریخ را پیدا کرده هم در فهم اهداف که محسره و هم در فهم آینده که بخواییم ما نسبت به او هم استنباط داشته باشیم و هم نسبت به وضع موجودی که الان در اختیارمونه در همه این مراحل این سیره و تاریخ میتونه نقش داشته باشه. هم در فهم دین و هم در فهم اون کلیه مقدمات و اصول فنی که ما را به اون اهداف برسونه. که نقش سیره و تاریخ چه خواهد بود؟ که در یک کلمه بگم قرآن یک ثمونش تاریخه. از شیش هزار آیه، از شیش صفحه قرآن، تقریبا دیویست سفهش تاریخه عجیب نیست؟ قرآن کتاب هدایت برای جامعه بشری کتاب جامعه ساز انسان ساز این قرآن یک سومش تاریخه خودم من یه تجربهی دارم بگم بهتون سال 65 ما معمور شدیم مدیریت گروه علمی مخصوص تاریخ را به عهده بگیریم در حالی که من تو تاریخ کار نکردم این مطالعات متفرقه گفتیم آقا ما نیستیم گفتن نه شما باید باشید. چون ما باقیدو شیلای هستیم من چگونه برم این گروه تاریخ مدیریت کنم گفتن این کار از شما ساخته است ما نمیدونیم شما باید تولید هیچ شما افتادیم به مطالعه و بررسی و تدریس تاریخ تاریخ استان تو دانشگاه چه چمبرون شروع کردیم این کار را. زمان جنگ بود تا 75 بعد آره. من تدریس تاریخ داشتم از اون زمانی که گفتن شما مدیر گروه تاریخ هستید که خیلی اعتقاد نداشتم به اینکه کار چه ضرورتی داره؟ این یک کار خیلی خیلی معمولی امونی حاشعی حالا من هیف نیست وقتم بذارم روی یک قصه پردازی و پس چناسی و عرضیابی و که چی مزارد. تا بعد از این دهه 65 تا 75 که بعد از اون ما دست به قلم شدیم و این مجموعه پیشواین هدایت اگر دیدید یا اعنامون هدای 75 تا 80 این دوره نوشتن این دوره سیره و تاریخ اهل بیت علیهمالسلام که مقامزمرهبری بر اون یک عنایت خاص داشتند و توصیه کرده بودند که برای جوانان این کتاب معرفی بشه خب اون دوره که گذشت ده سال به اینجا رسیدم که اگر کسی تاریخ شناس و سیره شناس نباشه در اجتهاد او تأمل است از صرف بسند بعد از ده سال کار نمیتونیم اون را مشتهده جامعه و شرایط بدونیم مشتهده جامعه و شرایط یه نمونه بگم وقتی اگر کسی لغت رو خوب بلد نباشه چقدر میتونه در اشتهاد ادعا داشته باشه از الله رو نظمه خوبی نقل میکنن ایشون می پرمود من این نمی تو رساله عملی و تو روایت اگر رفتید حمام می رفتیم خزانه ورد خزانه آب می شدیم خونده بودیم یستحب و تحری کل حاجب حاجب اینه دیگه درسته گوامی رفتیم قص میکردیم بعد اینجوری میکردیم سوال بود برا من خب برای چی تو حمام تو خزانه آب ما باید این حاجب تحریک کنیم برای چی؟ گفتا یه روزی متوجه با حاجب یه معنای دیگه داره حاجب یعنی مانع رفتی شما انگوشتر داشتی با انگوشتر از شوان. یه کاری بکن که مطمئن بشی آب به بشرت رسیده آه این معقوله یستحب و تحریک و حاجب. حرکت که بدی مطمئن میشه یه غسلک درسته اگر کسی لغت شناس نباشه بخواد استنباد کنه چجوری استنباد میکنه بیمایه فطیره نمیتونه استنباط کنه پس اگر کسی اصلا اعتقاد به تاریخ نداره میگه همش چرت و همش جعلیاته همش منابع نمیدونم غیر خودیه همش اسرائیلیاته همش همش همش منفی بافی کنه توی این بخش مربوط به تاریخ بگه چیزی قابل اعتماد ما نداریم حتی در قرآن هم که میان میگن خیلی از حرف قرآن خود قرآن فرمونده اساطیر اولی قصص انبیاء هم میگن اساطیره متحسر میگن اینا همه چیزایی حالا رمزیه کوده معلوم نیست این بقایه اینجوری باشه خب کسی که اینه نگاهش به تاریخ چقدر روی تاریخ کار میکنه و سیره و چقدر مایه داره و چقدر در فهم او اثر چون همه مسائل رو منهای تاریخ داره میبین فقط اثر حاضر اونم اگر کسی فقط در قوم باشه و بیرون از قوم نرفته باشه یه جور فکر میکنه اگر کسی بره سیستان برونچستان یا بره مثلا فرض کنید آزرواجان غربی یا بره کردستان شرائط و محیط های مختلف رو بینه اون از یه جور دیگه فکر یکی گذاشته بودن مدیر بین و آمده بود ایده بگیر از ما. گفتم خارج ایران رفتی گفت نه گفتم از تهرانم بیرون رفتی گفت نه گفتم تو مدیر بین و تو می‌فهمی بین چیه؟ ندیدی که بقهمی این معذل لذا اونایی که به تبلیغ میرن اونایی که به حلوس جهانگردی میرن نگاهشون نتونه متفاوت بشه حالا تو تاریخ سیر کردن هم همین نقش را داره اگر کسی در تاریخ وسیله بره کار کنه حرکت کنه ببینه که یک نگاه منظومهی جامعه به سیره داشته باشه که این رو در کتاب اخیران که چاپ شده چیه؟ به سیر علمه نمیدونی؟ همین انسان دویس پایین دستانه اخیران شد. حالا اون زمانی که ما این کتاب اعلام هدهاری می نوشتیم چیزی نبود فقط دو سه, دو سه تا مقاله آبا داشت چانس یه صلواتی برای ایشون خیلی در فاصله میگیریم بعدا در متن موضوع دارم حرکت میکنه اما متنوع میخوام باشه خسته نشید. هرکی خسته شده ی سلام بفرسته. چی خب اون اگر اشتباه کردید خونسا کنید با یه سلوات دیگه خب قصد گفتیم سیره و تاریخ نگاه جزدگرانه به سیره و تاریخ و استنباط این دوتا اشکال داره و نگاه جامعه به سیره و تاریخ به استنباد فاصله این تا این چقدره حالا این خیلی فاصله زیاد بعد میگم لذا ما اگر بخوایم اینجا ورود کنیم ورود ما اینجوری خواهد بود یک ما یک تیتری داریم کیا از دوستان حاضر پایان نامه نوشتن تا الان چند نفر داریم پایان نامه نوشتن؟ یک دو سه چار پنج شیش هفت هشت خب پاینامه نامه آزن جایی فرق نمی کنه دیگه خب میدونید یکی از مباحث بسیار مهم در روش تحقیق ما الان می تحقیق کنیم دیگه می بررسی کنیم نقشه سیره و تاریخ در مکتب فقهی یکی از قواهم معاصر درسته؟ برای اینکه ما به این بحث ورود کنیم ما چند تا کلید واژه اساسی داریم این کلید واژه ها چی این اینه این کلید واژه ها ما رو هدایت میکنن به اینکه ما بتوانیم به اون اجزاء تشکیل دهنده موضوعمون که باید نقشه راه براش داشته باشیم ما رو کمک میکنه. پس ما سه تا الان سه تا نیاز داریم ما الان فرص میده الان اومدم این مقدمات بذارید کنار میخوایم بحث کنیم الان سه و ده دهیق فکر کنم دیگه همده اکثر ما 20 دقیقه به ما اجازه دادن با حرف بزنیم خب ما سه تا کار اینجا باید انجام بدیم یکی این کلید واژه ها رو ببینیم و هر کلید واژه یک بحث خودش یه جلسه میخواد گفت که خدای تو میتونه این دنیای به این بزرگی کره زمین را در یه پرتقال کوچک جا بده نه پرتقال بزرگ بشه نه کره زمین کوچیک. امام هر فرمود؟ در کچک تر از این خدا قرارده در مردم که چشمیست. خب. حالا ما یه چین جواب اینجا باید به شما بدیم دیگه یک بسی که یه ترم حداقل درقل میخواد از عزیزان میخوان ما توی 90 دقیقه به جای نوت جلسه نوت دقیقه خلاصه شما. خب کلید کلیدواجه هاست که الان میگم خود کلید های دیگه مجبورم با سرعت رد شم. یه نقشه راهه یه تطبیق میدانی ست من سه تا گام دارم اینجا برای این کار بعد از کلید واجه نقشه راهی که باید بهتون بدم و بعد تطبیقات میدانی یعنی ببین بگیم در فقه رحمه معظم این چه اتفاقی افتاده بعد اینکه بفهمیم استنبات استنبات مخلوق چیه و این نقش و تاریخ در یک استم بازم از چیه و کجاست بعد ببینیم بگیم در فقط آقا چی هست از این بحثای ساندویچی هم من خیلی خوشم نمیاده چند نانچار بشارم باید ساندویچ بخوره در نقش راه سه تا کار سه تا راهنمایی براتون دارم می دونید چرا من این رو توی همه همین کلاسه من این کارم یعنی میام میگم که آقا من شاید جلسه آینده نباشم شاید ازرائیل آمد بفرمایید بریم بعد شما یه جلسه ناقص رفتیم هیچ شاکلی هم توش نبود با آقای یه بار ما بحثمو شد سر همین گفتم ببخشید شما خیلی میفرمود فرمود هرکی هر پیشنهادی داره بگه ما شما تلفن می دادیم آقا پیشنهاد داریم براتون حالا که وقت ندارید تماس بگیرید بهتون بگیم تا یه جایی دیگه در مکه ایشو را با یک شرایط خوبی یه جمع قرآنیونی خلاصه ایشون ما محاصره کردیم گفتیم که ببخشید شما که 20 سال می گید در زمان ده دهی 80 یا 90 بود 20 سال شما در تلویزیون داری اثر گزار هستی و تولید میکنی چند نفر مثل خودت تربیت کردی ما چند نفر کی؟ یکی دوتا اصول گفت نه آلا بعد ایشون که برگشت دوره تربیت استاد تفسیر قرآن را انداخت گفت تو سوالیه کردی گفتم آخر شما آمدیم الان اون زمان یا شاید اون روزی که ما دیدیم، با بیلچر ما میبردیمش برای رمی جمرات خیلی حالش خوب نب آدم چه میگونه یه گفت مگر میشه گفتم آره گفتم من تو یه ترم درسی این کاره میکنم چطور تو یه گفتم من چون در هر وقت درس میدم سه تا هدف بیشتر ندارم از اول رسالت خودم تعیین میکنم. سه تا کار من باید انجام بدم تو این کلاس، تو ای ایتر. یک، انگیزه بدم. به این دانش به این طلبه. دو، نقشه راه بدم. سه، یک نمونه تطبیقی زیر نظر خودم انجام بده که بیراه نمید. دیگه من راهش بکنم بعد میبینم رسیده حالا ما اینجور چند تاشو انجام دادیم انگیزه ایجاد شد یا هنوزه اگر ایجاد نشده یه صلاباتی خواهد کنیم چلا تا آخر بحث انجام داشت. نقشه راه که میخوام بگم تطبیقش نمیدونم امروز میرسیم یا نه دیگه اون طلبتون دیگه شما وقتی یاد گرتید خودتون میرید انجام بیدید خب نقشه جامع استنبات من باید به شما بدن روش دستیابی به نقش سیره و تاریخ روش دستیابی نه این که عرف سیره و تاریخ تو دستتون بذارن بگم آقا در فلان کتاب ایشون این نکته تاریخی اومده یا این بهره تاریخی اومده سه یه راهنمای مطالعاتی بهتون بدم خوبه؟ میخواید مطالعه کنی؟ که این توی چیز گفتم توی اون فایلی که فرستادم به شما بدن همه اینا رو اونجا گفتم خب کلیدواجه هاون چی هم؟ برگردم دیم یکی فقر یکی دینه یکی استنباته یکی منهج، چند تا چون یکی سیره یکی تاریخ یکی همون امام یا رهبر مرجع فقیه فقاهت اشتهاد بعد منهج فقهی و روش دستیابی اینا مهمترین چیزهایی هستن که لازم هم. که اگر خلاصه من میخوام بگم اینجوری میگم که خیلی خلاصه و ساده یه تعبیر شایسته دارن خیلی جالبه که اصلا دین دین یعنی چی؟ یا اسلام یعنی چی؟ میفهماید دین منهج و روش اداره زندگی انسان و بار دیگر الان اصطلاح جدیدی که همه میگند و خیلی روش دقت میکنن، سبک زندگی دین آمده سبک زندگی به ما انسانها را بده م جوری زندگی چجوری ما زندگی کنیم پس دین مجموعه از احکام قوانین آداب که به ما روش زندگی کردن رو یاد بده در این دنیا خب حالا این دین که میخواد این روش رو بده کجا اینا رو گفته توی منابع دیگه منابعمون چیه قرآن و سنت قرآن و سنت منابع اصلی ما هست خب، اینجا در بحث سنت که وارد میشیم، یه بحث سیره پیدا میشه سیره یعنی اون سبک و روشی که امام محسوم یا پیانبران محسوم در زندگیشون داشتند. و این میتونه برای ما الگو باشه و میتونیم از این سیره ما استنباد کنیم، استنباد قانون و حکم کنیم. کار فقیشه یا تفققه الدین یعنی دینو خوب بفهمه خوب بفهمه فرق اجتهاد و فقاهت اینجاست مجتهد میگه آقا من تلاش کردم اینه فهمیدم فقیه میگه نه دین این را میگوید یعنی به علم میرسه چون فقیه الفهم یا الفهم الدقیق یا الفهم دقیق المستند الى دلیل فرق فرق, فرق، فقه رسالهی با فقه مثلا صاحب جواهر فرقشون کجاست؟ اینجاست که تو رساله ما خود حکم میگیریم در جواهر میاییم دنبال دلیل اون حکم گردیم و اون فهمه اینم فهمه اون حکمه اینم حکمه اما اونه بدون استناد به دلیل این با استناده بدنید حالا فقیه کارشه چیه؟ فقیب وزن فعیل این که حکم خدا را بفهمه حالا اگر تلاش کرد و نفهمید میتونیم بهش بگیم فقیه؟ یا منم نفهمیدم احتیاط اینه احتیاطا این کار بکن که در رو برای شما گذاشته حکم نفهمیده به حکم نرسیده این الاحواتا رو شما توی مثلا کتب قدما ببینید هست علامه محقق نداریم. الاحوات ندارین داره الاظهار داره مثلا از ظاهر داره به چیزای از این قبیل دیگه بستگی داره شما چهجوری ازهر از و ظاهر در فهم اون فقیه اونجا معنا خب مشهور و اشهر این چی داره داره بنابراین ما در اینجا وقتی میگیم فقیه یعنی کسی که احکام دین را خوب فهمیده حالا دین دایره و قلمرو دین کجاست فقط فرد یا فرد و جامعه فقط فرد و جامعه است وقتی گفت قومهم و ان من قريه الا نحن مهلكوها نگاهش به جامعه است دیگه قرآن یک دین اجتماعی و برای همه امتها امت, ها ام... امت, قرآن امت واحده قرآن درست کرده انها دیگه امت رو واحده وانا رب فاعبدون فعبدون قرآن میگه من امت دارم بعد فقه من میاد فقط به فرد نگاه میکنه به امت نگاه نمیکنه و این مشکل ایجاد میکنه بس دین خوب نفهمیده حالا شهیستن میگه چرا اینطوری فقه دینی که جامع بوده و برای تحول جهانی این دین اومده چجور شد که فقهای فقه ما به مرور زمان نگاه فردی به دین و به احکام دین در ذهنشون شکل گرفت و انقلاب قبل از انقلاب اسلامی استعمار و از بین رفتن دولت اسلامی و تسلط حکومت‌های غیرخودی و استبداد در به وجود آوردن یک حرکت جهادی و مقاومت در برابر استعمارگرانی که ریشه و بنیه دین را می‌خواستند از بین ببرند چگونه سبب شد که فقهای ما دوباره برگشتند و مثل شیعه اقتصادنا اقتصادونا بنویسه مثل امام جمهوری اسلامی را اقامه کنه چه شد؟ و چگونه؟ این تحولات تاریخی به بار دیگر دوتا سوال هست دو تا دینی که جامع بوده برای جامعه بشری چه شد که این دین در ذهن و های ما به یک دین فردی شبیه نگاه مسیحیت به دین او جامعه ولی برای فرده حالا مسیحی فقط میره روزه یک میره به کلیسا ما هر روز نماز داریم ما مبارک روزه میگیریم چه شد؟ که شهیست در اینجا و شاید در انسان دویس پنجه سال هم این ببینید الان یادم نیست ولی قطعا ببینید که بعد از و آله دولت اسلامی به دست کی افتاد؟ به دست قرش افتاد به تعبیر خلیفه دو قریش میخواست که علی سر کار نیاید که نیامد و نقشه قریش موفق شد نه نقشه پیامبر پس قریش حاکم شد بر دولت اسلام قریش کی بود قریش نمیخواست محمد سلامت الله علیه نمیخواد پیانبر خاتم در دنیا حکومت کنه لذا با چهره های دینی و با همون روش هایی که حالا در جامعه اسلامی به نوعی مطرح بودند، آمدن و بر این حکومت چنبره بره و کم کم اقتدار شد مال قریش بنی امیه بنی احباز همه قرشی هستند این از دیگه پردن دست عثمانیو دین از حاکمیت جامعه و تربیت جامعه رفت به انزباه فقاه ما هم کم کم برای حفظ دین خودشون و حفظ اون دینی که حالا مردم یعنی دین حداقلی کم کم این دل ذهن فقیه اثر گذاشت گونه ای که شما میونه یعنی کتاب الجهال و معروف اینا در کتاب فقیه ما حض شد به یه متاخر دوباره امام احیاب کرد خب این سر، یکی از اسباب گرایش به نگاه فردی حالا یکی میخواد استنباد کنه با نگاه فردی استنباد کنه یه جور استنباد میکنه اما اگر نگاه جامع بدین و نگاه اجتماعی بدین داش داشت یه جور دیگه استنباد میکنه شهیستن مثال میاره به همین مقاله میگه وقتی که فقه ها میگن خیلی خب ما بیاییم در اون بحث حجیت خبر واحد میرسه به حجیت مطلق زن میگه خیلی خب اگه به ایل نرسیدیم چون ما رفتیم دنبال اشتحاد نرفتیم دنبال فق اشتحادم به اندازه توان خب یه خرده بس کردیم تنبالم که باشیم یه خرده بحث میکنیم میگه آقا نیست حالا که نیست من به علم رسیدم، برم به گمان عمل کن خب این یک قصور در اینجا بعد می که میان میگم خیلی خوب حالا که ما یعنی چون باید احتیاط کنیم احتیاط هم سخته خب به گمان اکتفا کنیم و همه چند مورد میاره که این که گرایش به احتیاط در اور فقهای مذهب وجود دلیل من فردیه چون این فرد میتونه احتیاط کنه اگر جمع بخواد احتیاض کنه مثال میزنیم چیزی که الان در مکه چند بار اتفاق افتاد طواف بین خانه کعبه تا 23 ذرا احمد این است خب چند میلیون حاجی همه میخوان به این احمد عمل کنن چه میشه من شاهد بودم در اولین حجی که رفتم شون زهید مرگ ها شدم به خاطر این ازدحامی که همه میخوان در این دیشتی زرا تابع همه میخوانم ازدهاز کنم, کنم. نمیشه این نتیجه اون نگاه فردیه اما اگر نگاه ایت اجتماعی بود میشه های طلاعزما خوئی آغا اشکال نداره برو تو هر جا که میخوای راحت باش تو باید تواف کنی مطاف فراتر از بشی زراع یا بحث هلال که شهدسر فرموده بود این فتوای الله عظما خویی به هلال یک فتوای با یک نگاه جهانی ببینه از کجا میاد این نگاه جهانی سیر و تاریخ چقدر در این نگاه جهانی اثر میداره؟ اینا هم جای بس فقط تو رجال و توی دلالت روایت خلاصه نمیشه نقش سیره و تاریخ خب حالا اگر یکی اومد شهید صد را من اینی میگم شهید صد را به نظام اسلامی حکومت اسلامی نظریه اجتماعی اسلام مطلب نوشت و ایده داد و این قانون اساسی ما و شده از اون نظریه اجتماعی شهید که در کتاب اسلامی خود الحیات جوزه اول اون رو میبینید و پشتبانه های علمیش در جوزه و در کتاب المدرسه القرآنی است. اما امام همون دیگاه رو داشت مقام معظم رحبری همون دیدگاه داشت، اما وارد مرحله اجرا و تطفیق شده شیستت موفق نشد این کار را بکنه اجازه بهش ندادن که شو وارد این مرحله بشه خب فقیهی که نگاهش بدیم جامع است و حالا این دین را سعی کردید در جامعه اجرا کنه و داره امامت و رهبری میکنه خب با چه چیزی داره امامت و با فقاهت یا منای فقاهت؟ سوال خیلی مهمه این کسی که داره این مدیریت را میکنه فقیه هست یا نه؟ بله با نگاه فقیه آری و خیر را در هر موضعی در هر حادثه ای داره صادر میکنه یا خیر از کجا آمد این بله یا خیری که رهبر میگوید و از یک خواستگاه فقی و فقیهانه برخواسته سیره و تاریخ چه نقشی را در این ذهن فعال و جوال و فقیه او داره ای ایجاد میکنه لذا شما میبینید اگر بخواید راهنمایی میکنم اگر بخواید فقاهت رهبر معظم را ببینید شما باید همین گام دوم ببینید شما باید کلیه سیاست هایی که مقام معظم رهبری اعلام کرده در خانواده در جمعیت در قانونگذاری در اقتصاد همه اینها فقه و برخواسته از فقه کافی نیست شما برید کتاب مثلا موسیقی و غنایا مثلا مسترات مسافر یا حالا اون چند بحثه از جهات که خونده شده و دیدی، اون نشون دهنده فقاهت ایشون نیست، اون یک بخشی از از اون بعد فنی فقاهت ایشون رو نشون میده، یک بخشی پس بررسی سیره و تاریخ در این کتاب یا کتاب مشابه اصلا نمیتونه به شما نشون بده که سیره و تاریخ در ذهن این فقیه و فقاهت این فقیه چه جایگاهی داره و چه کار داره میکنه نمیتونید لذا میگم ضروری اون مقاله شهیدسل خوب با دقت بخونید با تحلیل نقشه را بهتون میده که چه چیزایی رو شما باید بدونید تا بتوانید بفهمید که امام خامن این حفظه الله چگونه این ذهن فقهی حوشه گره حتی اون کتابی که حالا قبل از انقلاب چار شده بود راجع به معارف اسلامی توحید اینا در قرآن بود اصول عقاید در قرآن حالا بعد بازسازی شد و مفصلتر شده این هم مثل ایچیه تره کلی اون نشون میده نگاه این فقیه چیه انسان دیس ساله یه بخشی از اون مجموعه منظومه ای که در ذهن یک چنین فقیهی داره نقش ایفا میکنه و داره در استنباط به او کمک میکنه. خب با عرض مذرت زمان نتمو شده من نمیگم. خب نقشه راه چی بود مون دیگه بحث من ما باید اینجا به شما وارد منهج استنباط می فقط تیتراره میگم. گم چیه منهج چیه استنبات چی؟ این موثر توی فهم این سیره و تاریخ استنبات چی؟ استنبات استخراج دیگه چیه میخواییم ما بیرون بکشیم؟ مستخرج و من چیه؟ از کجا باید استنبات کنیم؟ نقش سیره در فهم قرآن و سنت نگاه کلان مستخرج مستخرج من و مستخرج یعنی فقید مستنبت و مستنبت و مستنبت اینا ست ارکان عمل استنبات هستند. اینا با هم رب دارن خب یه معنای بسیط داره استنبات نحوه استخراج و از منابه یه معنای مرکب داره این استنبات مجموعه عناصر دخیل در استخراج همه عناصر این که اشاره کردم چی هست؟ از منبع و قوائل و روش و مراحل و همه اینا مبانی مبانی استنباد که در این بحث دیشت تاریخ در مبانی کجا اصل می داره در منابع کجا اصل می داره و در تمام اون مفرداتی که در منابع آمده یعنی در متن آیات و روایات و فن آیات و روایات چه اثری داره؟ خب اینا رو من مفصل نمیشته بودم دیگه حالا اگر فرصت بودی وقتی بهتون به صورتی فایل ممکنه بدیم اگر بخواهید و اینکه ببینیم که نیاز داری یا نداری بله خب در سیر و تاریخ ما حتما باید حادثه تاریخی تحقیق در اون حادثه تاریخی و کیفیت تحقیق در آن برای فقیه نیاز من مورد نیازه تحلیل حادثه تاریخی یعنی ریشه ریشیابی اون حادثه تاریخی و علل وقوع آن و بررسی نتایج و آثار و پیامدهای های آن علل وقوع نزدیک و دور پیامدهای دور و نزدیک در حوادث معاصر در حوادث متأخر نقش اون حادثه در فرهنگسازی و فهم اجتماعی و نقش اطلاعات تاریخی در فهم متون معاصر حوادث و فهم اون متون در حال حاضر آنین شد؟ یه رشته تحصیلی و یه ترم درس بدم رابطه فقه و تاریخ یه ترم حالا شما اینجا یه چی داری؟ یه فلش کوچیکی داری که یه هم نمیشه نمیتونیم های این هم مطلب بدیم بیدیم بله بفن خب مشکلتون همینه دو تا, دو تا مثال بهت بدم به چه درد تو میخوره همون حرف اول من پس شما آمدی میگی آقا من ماهی میخوام بخورم ماهی گیری نمیخوام یاد بگیرم من میخوام به نقشه راه بدم تو به چه دردم میخوره دو تا مثال بگو بارا دیگه هنوز بس به بلوغ مطلوب تو این جلسه یعنی نرسیدیم ما در ضمن مثال بشه آقا بیانیه گام دوم رو بخونی می‌فهمی. تاریخ‌چرا گذاشته و فعلی رو گفته آینده رو بهت نشون داده. <تصفيق> بیانی گام دوم خوندی؟ <تصفيق> با این نگاه با نگاه این که بیانی گام دوم یک اثر اثر علمی یک فقیه جامع شرایطی که به حوادث منطقه و جهان احاطه داره و داره برای اون الله الذین آمنون کن که هدف اجتهاده یکی از هدف مهم اجتهاد برای اون هدف داره ورعالیزی میکنه داره استمباط میکنه مشکلتون و مشکل خیلی اینه که فقاهت رو فقط در این اثر علمی خلاصه میکنید شما هنوز فقر و فقاهت رو کامل ندیدید مشکل اینه چون مشکل اینه شما یک مثال بده من برای ساندویچ بگیرم برم بله ایشون هم توی این آثار شما بخونید بمیبینید که آقا مثلا درباره فلان راوی سقه هست یا نه تاریخ چه زندگی او رو اگر کسی مسلط باشه میتونه مساقتش رو حتی اگر آقای نگویند بفهم این سطحه مثلا یا مثلا این راوی در این جایگاه قرار گرفته باید انسان تاریخدان باشه که ببینه این راوی توی این سلسله سنت میتونه باشه یا نه این ریزش دیگه خیلی موارد داره دیگه یکی دوتا که نیست یا این که مثلا این فهمی که شده از این حالا تو موسیقی مفصل ایشون اوارد شدن که فهم جامعه اون روز از زنا و یا موسیقی چی بوده این اتیاج به مطالعه تاریخی داره کل روایات یه طرف وضعیت اجتماعی اون زمان باید بدونی تا بفهمی که آقا این فهمی که فلان فقی از موسیقی غنا کرده میدونید تو موسیقی یه حد عقلی داریم یه حد اکثری داریم حد اکثریش اینست که هر چیزی که درنگ و درنگ داره این دیگه موسیقی و غناس باید اجتماس داشت کنید. یه فهمه دیگری هست که نه آقا اون چیزهای مبتزلی که خلاصه در شأن اون مجالس فسق و فجوره فقط اونا هستن که ممنون شدن. و بین بین بین این اقل و اون اکثر و چندین قول هست. از کجا ناشی شده اینا؟ از نوع فهم فقه, ها. فقه هایی که رفتن توی بحث اجتماعی و بحث تاریخی فهمشون دقیق تره، کامل نسبت به اونی که فقط همین روایت دیده مثل اون بحث چی؟ حاجب، حاجبی که گفتم فهمه ملانوقدی، فهمه فقط معنای لغوی ایشون بعد میاد معنای لغوی را هم مورد بررسی قرار میده میگه چقدر دقیق این معنای لغوی؟ زیاده این دیگه و ببینید ما میخوایم به شما بینش بدیم دیدگاه بدیم که آقا این بحث یه بحث تخصصی وسیعیه شاید برای طلبه پای پنج و شیش و اینا زود باشه حتی برای طلب خارجمون هم زوده خب من چند تا راهنمایی که اونجا دادم بهتون میگم دوست داشتی اهلا و دوستم دوست هم نداشتید باز اهلا و پنج تا فایل من اونجا دادم برای عزیزان گفتم اینها را خوب مطالعه کنن قبل از اومدن به اینجا. فایل اول راجع به سؤال اصلی که در این بحث ما داریم، سؤالهای اصلی کلی و راهگشا در بحث نیاز فقیه به تاریخ و سیره در استنباط احکام شرعی در دین. سال شستوی اکه بطفی کنم. ما رفتیم احواز دست میدادیم دادیم حوضی خواهران و برادران یا بود. نمیدون. رفتیم توی سلیمان یه حوضای خیلی خوبی بود. اونجا اقای ربانی مدیرش بود. به ما گفتن که آقا یک درس اخلاق شیش جلسه درس اخلاق و برای این ها گرفته بودن تو درس اخلاق گریه میکردن کردن من بعض هم علمی بود بعض عاطفی و این نبود تو میگو اخلاق یعنی چی و چگونه ما به این اخلاق میرسیم نوشته تو ارزیابی نوشته بودن آقا ببخشید این استاد ما رو نتونست به گریونه حالا به خودت نگیر آیم مثاله میدنم. یه سلامت ختم خودمون کشتیم اونجا نقشه را داریم بعد که آقا ما گریه نکردیم اینو من ببین الان کل اینها رو که الان برای چی نوشتم؟ من چند روز وقت نوشتم اینها رو براتون یک سرفصل کامل دادم که اگر ایجون بخوان بدن تخصصی تخصوصی بزنه الان همین الان میتونه راحت بره بزنه خب نیازه به تاریخ و سیره در اشتحاد و فقاعت و استنبات احکام خب چه تاریخی و چه ای با یا کدام بحث تاریخی و سیره این مورد نیاز فقیه این هم یه فایل منابع و مراجع مورد نیاز بحث چه تاریخ و سیره در اشتهاد فقهات. براتون کلی منبع اینجا از معاصرین و از غیر معاصرین دادم بعد منابع مناسب در مقالات و کتاب و درستای خودم که بهتون چند تا منبع میدم اینها رو شما میتونید اینجا من آدرس دادم مراجعه فرمید. اگه دوست داشته باشی، توی اینها ورود تفصیلی و جدی ما داشتیم. تجربه ما تجربه ما. حالا بگم یک چیز سریع. سال 77 هسته الله هاشمی شهرودی خدا رحمت شکنند. استاد بزرگوارمون ما را دعوت کردن برای مدیریت طراحی و مدیریت یک دوره تربیت محقق در دارتون معارف شد. همین دارتون معارفی که الان میبینید هموند. و اندی شده. این از برکات اون نگاه جامعی که مخام معظم رهبری دارن که به دستور ایشون این دارات المعارف شکل گرفته یکی از اون انگشت هایی که دیده نمیشود توی این کار غیر از پیام هایی که برای علماء و برای این هایی که رحمت و خدا میرند مثل شهید و دیگران داده یا پیام ها در حوادث مختلف اجتماعی و سیاسی همه اینا رو باید جمع کنید تا بفهمید این فقیه یعنی چی جوری فکر میکنه و کجا رو یکیش یکی از اونهای م... بیانی های مهم بیانی مقام معظم رهبری برای کنگره شیخ مفید است آدرساش هم گذاشتم اونها باید بخونید شما تا نخونید هیچی مزه به درنتون مزه نمیده. دو تا سه تا هم من بیارم نخواهیم فهمید این خیلی مهمه خب چی میگفتم بله این فایل ها رو را... مال این دوره ترگیت محقق خلاصه در اونجا مهمترین کاری که ما تونستیم تو اون دوره انجام بدیم و بعد چاپ هم شد و الان هم ترجمه شده پنج مقاله در مجله فقه اهل بیت شماره های 13 تا 17 پنج مقاله راجع به مراحل تکامل فقه امامیه و الان فقه امام غایت الله از مخامنه شیعه در چه جایگاهی از این تاریخ فقه ما قرار میگیره آیت الله هاشمی 6 مرحله را توصیف کرده بودند که ما اونجا چرخ کردیم مرحله هفتم که مرحله بعد از انقلابه جاش خالیه و من اونجا مشخص کردم این مرحله با ورود به انقلاب اسلامی و تشکیل دولت و نظام اسلامی مرحله جدیدی است هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ فنی الان چهل سال فقه مختلفی که داریم دارن در بحث نظام شناسی و نظام سعادی فقه نظام ساز دارن کار میکنن هنوز اول راهیم اما مقام معذر رهبری در اینجا به کجا رسومده و رسیده این هم خودش یک کار بسیار مهمی که نشده هنوز نشده ولی قطعاتی از این منظومه ها داره مطرح میشه خب این هم یکی از است که به در در میخوره این شما تاریخ فقه و فقها را باید بخونید تا اینجا بتونید بفهمید تاریخ هم در این بصف قفقه ها و هم در فقاهت و از لحاظ فنی تاریخ چقدر؟ یعنی همین قدر براتون بسه که بگیم اگر کسی تاریخ شناس تاریخ دان و قدرت تحلیل تاریخی نداشته باشه در فقیه بودنش میتونید سکوت کنید به عنوان یکیزی که چهر سال پنجا سال مالان داریم هم درس خونی هم درس میدید از 0 تا 9 تا حالا چقدر میشه ده 50 60 70 80 و 90 حداقل بیش از بیش از 50 تا همه اینا رو هم دیدیم دیگه حالا آثار تو گوگل هم بزنید ببینید در زمینه‌های مختلف چه بحثایی شده همه اینا به درنتون میخوره یعنی میرید نگاه تاریخی موج میزنه تو این همینطور در وحصه مقام معظم رهبری شهید صد امام شهید متحری اینا را اگر شما نگاه کنید میفهمید که سیر و تاریخ به این نگاه حد اقلی که شما فکر میکنید نیست. همین یک کلمه را بگیرید بسته به نظر بنده خب والحمدلله الحمدلله را بلعالمین. گفتم من به دوستان به زور من اینجا بکنید اولا یا اینا درس verir وقت داری این برای من Teşekkürler. Şerinden en ola teyekkür. Teşekkür ederim. 11 dakika diye vakit var. Ne oldu abi? Yine beni اشکال نداره من که همین وقتا می سف نه سد دوازده دویست و پنجاه بیست و نه هفت ایتا سرور بله ایما میت سکایپ دیگه چی نه روپمای زیاد ضامن <ماشان> اگر نذاشتن من بهتون میدم دست یه مرکزی دارید طارق ام بخالی بیشتر کمک می‌کنه یا اشتباهه خورشید صد خدا رو بند سلام ان شاء الله بود